Au. Au. Au. Au. وانه فارسی بناوی کردگاری زانه و توانه خوشویستان و هوریانی برنامه وانی فارسی ویرای سلام و رزمان لبرنامې رابردودا محمد هاوریکی قراری انده نا سری کی چایخانه بدن اوان ایسته ل چایخانه کن محمد بسرنجو سيري د روبر دکات چند میز او کورسی چوین ل چاخانه ک دان راونو اولادریش څن تخت برچاودن ل تخت تختکان جو بار یک خورهیده هنده ل خلق ل پج میز او ل سر کورسی دانشتونو هنده ل لسر تخت سر تختکان دانشتونو پالیان به پشچکان و دا محمد هاورکی لسرت تخت یک دد پال ادنوه لسوچ کی لای راست پیو یک خریکه ایرانی اسر سیتاریش ل دنگ سیتارکی طلب زوینه محمد بهگریوه جورا و جو وبو خسکانی محمد هاورکی بگرن سره تا وشو د سواژکان دو پات چه جالب چه جالب چه اینجا اینجا ارا موسیقی موسیقی موسیقی زنده زنده زندو موسیقی زنده موسیقی زنده موسیقای زندو دارد دارد حیطی او او او آقا آقا آقا دوست من دوست من هوری من آواز آواز او آواز. واس ها، او واس او ها ها های ایرانی، آواز های ایرانی، او زا او آواز میخواند. او آواز میخواند. او آواز دخونه. ساز ساز آمیر اسم اسم ناو، چیست چیه ستار ستار سه ساز ایرانی ساز ایرانی آمری ایرانی، آمری ایرانی، صدا، صدا، دنگ، خیلی خیلی زر دلنشین دلنشین. دلپزوین، دارچین، دارچین، دارچین چای، چای، چایی چای دارچینی، چای دارچینی چای دارچینی تو می تو می خوری تو, تو دخویی من نمیدانم، من نمیدانم، من نزنم، من فکر میکنم، من فکر میکنم، من وادازنم، زنم. خوشمزه خوشمزه ز، بچه هم، قوری، قوری، چادن، من میگیرم، من میگیرم. من دگرم دو تا دو تا دو دیزی دیزی دیزی پلو پلو پلاو ما میخوریم ما میخوریم اما د خوینه ما نمیخوریم ما نمیخوریم اما نخوینه Sabzi. Sabzi. Sawzi. Piaz. Pios Piaz. piaz. Turshi. Turshi. Turshi. Non, non, nan. درزان استاش سرنجی و تویجی نیوان محمد و حورایی کرد چه جالب اینجا موسیقی زنده دارد چه جالب اینجا موسیقی زنده دارد بله آن آقا دوست من است. آوازهای ایرانی می‌خواند. بله. آن آقا دوست من است. آوازهای ایرانی می‌خواند. اسم آن ساز چیست؟ اسم آن ساز چیست؟ اسم آن ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است. اسم آن ستار است. ستار یک ساز قدیمی ایرانی است. صدای این تار خیلی دلنشین است. صدای این تار خیلی دلنشین است جام میگیرم و از اهل ریا دور شده یعنی از اهل جهان پاک دلی بگزینم استاش همانو تویش به ورگیرانی کردیوه چه جاله اینجا موسیقی زنده دارد چه باشه اران موسق زندویهیه؟ بله، آن آقا دوست من است. حواز های ایرانی میخواند؟ بله، او برادر حوره نه؟ ایرانی رانی اسم اسم ساز چیست؟ نوی او عامرا چیه؟ اسم آن ستار است ستار؟ یک ساز قدیمی ایرانی است نوی ستره ستر آمریکایی ایرانیه صدای این تار خیلی دلنشین است دنگی ام تاره زور دابزوینا نه. محمد و هوراكي تابق جواب و موسيقى و آواز إيراني رادقرن دوهاي اوا هوراكي دازدك بقسه کردن باب زانين چی دارن؟ چای دارچینی میخوایی؟ چای دارچینی میخوایی؟ نمیدانم خوشمزه است؟ نمیدانم خوشمزه است؟ بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دو تا دیزی. بله، من یک قوری چای دارچینی میگیرم با دوتا دیزی. دیزی رو با پلو میخوریم؟ دیزی رو با پلو میخوریم؟ نه، دیزی رو با پلو نمیخوریم. ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم. نه، دیزی رو با پلو نمیخوریم. ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم. جالب است. جالب است. عزیزان استار لگل و چوجاکه دا جومان لا ورګیرانی کوردی کشی چای درچینی میخوری؟ چای درچینی ده خویه و؟ نمیدانم خوشمزه است نزانم، زور به بله، من یک قوری چای درچینی میگیرم با دو تا دیزی بله، چادنک چای درچینی وردگرم با دو دیزی دیزی رو با پلو میخوریم؟ دیزی با پلاوا دخوین؟ نه، دیزی رو با پلو نمیخوریم. ما دیزی رو با سبزی و پیاز و ترشی و نان میخوریم. نه، دیزی با پلاوا نخوین، اما دیزی با سبزی و پیاز و ترشی و نان دخوین. جالب است. آره. شویشستان به شکیدی کلا زنجیره برنامه نامه ی وانی فارسیتان پیشکش